نام نیکت مصطفیم ای حبیب حاشبی یاد تو از قلب حاشق میز هر رمی. تو مثال ماه جهان جهانها رسول ما دون دیدن روی تو را داریم قبول مصطفی داج داره انبیا و مرسلین ساغیه کسر مجلس مجلست رو غمین تو نگینه علقه جمعه خلاید نام تو تفسیر و باشد جمله مهر و صفا جمله مهر و صفا موجودت که شان را روشنی، هر دل داوتد را بودی رسول ام از ضرور دل نوازم نام پاکو اثرات. که شبان ماه ببینی روی ماهو انباراد. برای امّان اسم آماد. ای حبيب نام دام. مصطفایم اهل اغرا نام پاکت افتخار امتت را هر زمان بودی تو می در دعا امت امت بر زبانات بود به دربار خدا بود به دربار خدا مصطفایم مصطفایم مصطفایم مصطفی دین و آین تو باشر صلح و آشتی را بغا ای رسول نامدار ای آخرین اندیا شاب روز جدای مصطفی خير الورا مصطفی خیر, الورا مصطفی خیر الورا مصطفیم مصطفیم دین و آینه تو باشد تو باشدی را ما فدای نام کرد ای رسول نازنین چون توی دریای رحمت رحمت و لن عالمین ای آبوشت یا تیمان را نوازش می چه ادبر دشمنانات هم کتابش می نمود هم, هم کتابش می نمود نام تو در به جندت حق شده با ناب، ناف تو شبیه امدت ای مصطفی روز حسام بی کرم بر نام پاک و عطرات با جان و دل ای مصطفی ام با ولات مصطفی ام با مصطفایم مصطفایم مصطفایم مصطفی. مصطفا دین و آینه تو باش صلح و را بغا ای که دانش از تو را مفسد برای بندگی با صفات و سنت احمد بکن تو زندگی زندگیت کن مزین با فرا رسول تا که باشین از درمان صاحب از و قبول صاحب و قبول زاهدان میزبان علم و دانشو جمع شما دوزن خوش آمدید در این بار با سپا زاهدان میزبان علم و دانشو جمع شما دوستان من خوش در این با ماوراء باصفا این بر با با با با با با روح محمد صلوات <تصفيق>